بسم الله به نام خداوند بخشنده مهربان آنگاه که خورشید در هم پیچیده شود و, و ستارگان بی فروغ شود و, و کوخا به حرکت در آیند و, و آنگاه که با ترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و آنگاه که وحوش جمع شود و انگاه که دریاها برفروخت شود و آنگاه که هرکس با همسان خود قرین گردد و آنگاه که از دختران زنده به گور شده سؤال شود به کدام این گناه کشته شدند و, الصحف و آنگاه که نامه های اعمال گشوده شود و, و آنگاه که پرده از روی آسمان برگرفته شود و, و, و آنگاه که دوزخ شعله گردد و, و آنگاه که بهشت نزدیک شود هرکس کس می چه چیزی را آماده کرده است چیزی <تصفيق>